صفحه 993 وقتی رئیس راهننان بارهای روغن را از روی قاطرها به زمین گذاشت میخواست تمام شب را در حیات به سر برد و مزاحم علی بابا نشود ولی در واقع قصدش به کمک نفرات خود که در خمره ها منتظر فرمان او بودند نقشه یشو خود را برای کشتن علی بابا اجرا کند برآخر رئیس دوست ها به تالار پذیرایی هدایت شد و در کنار علی بابا شام خورد موقعی خواب علی بابا خدا حافظی کرد و به اتاق خود رفت. قبل از رفتن از عبدالله خدمت مخصوص خود خواست که صبح زود گرم را برای گرم کند و حوله های تمیز هم برای او آماده کند. رئیس رازنان به جایان که به بستر رود و به خوابت به بحانی های خود در استب به حیات رفت و به هر کدام از نفرات خود در داخل هر خمره دستورات لازم را داد و از جمله گفت وقتی من ریگی را از داخل اتاق به حیات انداختم شماها به حیات بیایید و من هم به شما خواهم پیوست. بعدا بعدم به شما دستور لازم را خواهم داد مجانه به دستور علی بابا ها را به عبدالله داد که در گرما به آن را آماده بگذارد و خودش سر آشیگی روی آتش می رفت و کف آن را گرفت در همین لحظه روغن چراغ تمام شد چراغ آشپسخانه و سایر چراغها هم روغنشان تمام شده بود همهجا تاریک شد در چنین تاریکی مرجانه که احتیاج به روغن داشت زف روغن را برداشت و به سراغ نخستین خمره رفت تا مقداری روغن از آن بردارد ناگهان صدایی از درون خمره به گوشش رسید که می گفت، الان شروع کنم البته هر کس دیگری به جای مرجانه این صدا را از درون خمره می شنید، از ترس قشمی کرد یا فریاد می کشید. اما او که آدم عاقل و بود بارن متوجه خطری که علی بابا را میکرد شد شد و فاسخ داد، حالا نه خودم خبر میدهم مجان سراغ یقایی که خمره ها رفت و همان صداره از درون خمره شنید. او فهمید که میهمان آنها بازرگان روغن فروش نیست و رئیس راهزنان است و با 38 هشت خمره که سی هشت راهزن هستند به قصد نابود کردن علی بابا آنجا آمدند. مرجانه از ظرف روغن در آشپزخانه، مقداری روغن را در تابه بزرگی ریخت و بر سر آتش گذاشت و آن را داغ کرد و سراغ خمره ها رفت و در هر کدام را برداشت و مقداری روغن جوشان روی سر و صورت هر یک از آنان ریخت که آنان به حلاکت رسیدند بعد هم سر و صدا به آشپزخانه برگشت رئیس راستانان سهرگاه از خواب برخواد و یک جان ریخت به صحن حیاط پرتاب کرد و امیدان که نفرات او از خمره بیرون آیند و در سحر حیات جمع شوند. وقتی واکنشی از آنها ندید دو سه بار ریگ به حیات پرتاب کرد ولی خبری نشد. سپس شخصا در هر کدام از خمره ها را برداشت و فهمید که همه آنها را با روغن داق کشتند. آنگاه پیبرد برد که نقشه او برای کشتن علا نقش نقش براب شده و تیر او به سنگ اصابت کرده است. وقتی دانست هیچ کاری از او ساخته نیست، جز آن که برای رهایی جان خود از خانه فرار کند صبح علی بابا از بستر به گرمابه و بعد از گرمابه لباس پوشید و بیرون آمد و مرجانه را دید و از او پرسید خمرها که هنوز در جای خود قرار دارند پس بازرگان کجاست؟ مرجانه پاسخ داد ای ارباب نیکو کار من اگر زحمتی نباشد همراه من بیایی تا همه چیز را برای شهر دهم. مرجانه گفت چند روز پیش علامتی را رو روی در خانه دیدم که با گش سفید کشیده بودند پیش خود حد زدم که باید نقشه ای در کار باشد برای خونسا کردن آن همان علامت را من بر روی درهای خانه های مجاور هم کشیدم بعد از آن همان روز همان علامتش را با گچ قرمز روی در خانه دیدم باز به همان ترسیب من هم علامت گذاشتم که سبب شد نتوانند خانه شما را از سایر خانه هاتشتیس دهند ده چون در خمره ها سی و هشت تن راهزن جان سپرده اند معلوم می شود دوتن از آنها که مأمور تشخیص خانه شما بوده و من رمزانها ها کشف کرده بودم به دلیل شکست در مأموریتشان آنها را کشتند علی بابا با شنیدن سخنان مرجانه او را در آغوش گرفته گفت مرجانه تو جان مرا نجات دادی و با زیرکی خود مرا آسوده کردی از این لحظه تو را آزاد کردم و دیگر هم کنیز من نیستی و من وظیفه دارم پاداش کافی به تو بدهم. سومان که با یک جنازه این 38 نفر راهزن را به خاک بسپاریم. در انتهای باغ علی بابا زمین وسیعی وجود داشت و علی بابا دستور داد که جنازه ها را در آنجا دفن کنند تا کسی نفهمند در خانه علی بابا چه گذشته است. ها و خدمتکاران و مرجانه و خود علی بابا دست به کار شدند و همه راهزنان را در زمین باغ به خاک سپردند. رئیس راستنان از خانه علی بابا فرار کرد و خود را به غار رساند و داخل شد. او احساس تنهایی میکرد و با قم فراوان با خود میگفت چگونه افراد دلیل و فداخار خود را از دست دادم و تنها شدم. آیا خواهم توانست دوباره افراد فداخاری به جای آنها فراهم آورم؟ ولی میترسم تا آن موقع علی بابا تمام طلا و نقره و جواهرات این غار را به غارت ببرد. من باید قبل از هر اقدام علی بابا آن را خودم با دستهای خودم از میان بردارم و تا دو بار با شکست روبرو شده و علی بابا بر من پیروز شده است از این باید هرچه زودتر به شهر بروم و نخشه خودم را علیه علی بابا اجرا کنم رئیس راهزنان از غار بیرون آمد و خود را به مسافرخانهی رساند و اتاقی کرایه کرد و با صاحب مسافرخانه طرح دوستی ریخ و از این راه اطلاعاتی درباره مسافرین و حوادثی که در شهر اتفاق می به دست می آورد ولی آنچه کرد تا در باره علی بابا و وضع مالی او که به تازگی بسیار چشکی شده است اطلاعی از صاحب مسافرخانه به دست آورد موفق نشد به ترتیب به این نتیجه رسید که علی بابا نگذاشت کسی به اسرار او پی ببرد و علت آن هم به این خاطر بوده است که مردم, م... که مردم محل پنهانی قار و جواهرات را یاد نگیرند تا او خودش پنهانی به تنهایی از آن بحرمند شود. رئیس راستانان فکری به خاطرش هستید و برای اجرای آن فکر دکانی در بازار کرایه کرد که مقابل دکان کازم برادر علی بابا بود که اینک پسرش در آنجا به تجارت مشغول بود. رئیس راستانان به طور پنهانی مفتاری جنس از قبیل پارچههای زربفت و انواع اشیاء قیمتی به تدویش از غار به دکان ورد و رفته رفت باب آشنایی را با پسر کازم گشود و چندین بار او را میهمان کرد و به گردش و تفریح می برد و به تجیر دوستی او را به سوی خود جلب کرده بود. پسر کازم که جوان ساده و بدون تجبهی بود کم کم شیفتی رفتار رئیس راه زنان که خود را حسین بازرگان نام گذاشته بود گردید. حسین بازرگان چندین هدیه برای پسر کازم میآورد و گاهی هم او را به شام و نهار دعوت می کرد. او که خود را مدیون پذیرایی های حسین بازرگان می دید ولی جای کافی برای پذیرایی او و جبران پذیرایی های حسین نداشت به علی بابا متوسط شد و علی بابا هم با کمال رضا و رقبت حاضر شد از حسین بازرگان در خانه خود پذیرایی کند. و دقیقا همان چیزی بود که حسین بازرگان در جستجوی جوی آن بود علی بابا گفت فردا روز جمعه است و بازار تعطیل است تو به اتفاق حسین به گردش برو و بعد از نهار بدون که حسین بفهمد، فهمن طبق قرار قبلی او را به خانه من می از خیابانهای نزدیک عبور کن تا به خانه من نزدیک شوی و وقتی مقابل آن رسیدی بگو خسته شده ای و اینجا تصادفا خانه پدر من است و اندکی استراحت کنیم. پسر به همین ترتیب رفتار کرد و سرانجام حسین بازرگان را به خانه علی بابا آورد و حسین خیلی خوشحال شد و در دل با خود گفت بی سر و صدا در همین خانه با خنجری که در زیر لباس خود پنهان ام علی بابا را خواهم کشت و از دردسر او آسوده می‌شوم علی بابا با روی خوش به حسین بازرگان خوش آمد گفت و او پذیرایی کرد و گفت ممنونم که دوست برای نمای سودمندی برای پسرم هستی حسین بازرگان هم با مهربانی و فروتنی پاسخ داد من کاری نکردم او جوان باهوش و خوبی است و با استعداد خود همه چیز را میآموزد. بعد از چند لحظه حسین اجازه مرخصی از علی بابا خواست تا به مسافرخانه برگردد. علی بابا با خوشرویی گفت: چرا آنقدر شتاب دارید؟ من خوشحال میشوم که شام را با شما بخورم و شب هم در همین خانه استراحت کنید. حسین بازرگان ظاهرم ظاهرا میخواست آنجا نماند ولی در حقیقت در دل خود بسیار خوشحال بود. زیرا با این ترتیب میتواند بی صدا و سری علی بابا را با خنجر بکشد. سرانجام او موافقت کرد، در خانه علی بابا شام بخورد و شب را هم استراحت نماید. ولی زن موافقت خیش از علی بابا خواهش کرد که در غذایی که برای او تهیه خواهند کرد، اساسا نمک به نبرند و غذای او کاملا بدون نمک باشد. علی بابا هم به مرد دستور داد سه خوراک راگو از گوشت خوب تهیه کند و نمک در غذا بکار. نبرد برادر. مرجانه گفت: ارباب، اگر نمک به نبرم، غذا بدون مزه خواهد شد. علی بابا گفت: نگران نباش، دستور میهمان چنین است. مرجانه هم به همین ترتیب راه را آماده کرد و به عبدالله خدمتکار داد که سفره را در تالار پهن کند و غذا را در آن بگذارد. و خود مرجانه هم که میخواست این میهمانی را که غذای بی‌نمک میخواهد ببیند، به تالار آمد. و در نگاه اول فهمید که این میهمان همان سرزدی راه است که خود را به شکل تاجری درآورده و با دقتی بیشتر مرجانی متوجه شد که این میهمان خنجری در زیر لباس خود پنهان کرده که علی بابا را بی سر و صدا به حلوکت برساند بعد از اینکه عبدالله صفردار جمع کرد مرجانی میوه و شیرینی به تالار برد و بعد هم سلیوان آورد و در کنار علی بابا گذاشت و بیرون رفت و به عبدالله گفت ما هم شاممان را بخوریم و بعد از آن مرجانه به اتاق خود رفت و لباس رقاسه ها را برتن کرد و نقابی هم بر صورت خود گذاشت و تنبوری هم به دست عبدالله داد ولی نقشه شجاعانه و خطرناکی خود را به عبدالله نگفت فقط به او گفت باید ارباب و مهمانش را کاملا سرگرم سازیم تو تنبور بزن و من هم با آهنگهای شادی را که تو مینوازی نوازی خواهم رقصید مجانی رقصنده زبردستی بود و مشغول هنرنمایی شد و علی بابا و سرکردهی راهزنان که حسیل بازرگان دروغه بود از هنرنمایی عبد و مرجانه لذت می‌بردند و غرق تماشای رقص مجانی شدند و مرجانه هم با حرکات موزون و زیبایی خود غقا می‌کرد سرکردهی راهزنان هیچ‌گر با این ترتیب نمی‌توانند نقشه قتل علی بابا را به موقع به اجرا درآورد. آنگاه با خود قرار گذاشت که اگر امشب موفق نشویم باید نقشم را به وقت دیگری مکل کنم مرجانه آنچنان زیبا می که تمام حواس حسین بازرگان متوجه حرکات او بود و مرتب او را تحسین می کرد بعد از اون که مرجانه چندین بار رقصید، به همان گونه رقصکنان کنان خود را به سرکرده راهزنان نزدیک ساخت و همین که مقابل او رسید با دست راست خود خنجری تیزی را که در زیر کمربند پرد خود مخفی نگه می داشت بیرون کشید. و با حرکت سریع آن را تا دسته در قلب حسین بازرگان که انتظارش را نداشت فرو کرد. علی بابا و پسر که از همه جا بیخبر بودند بسیار از این حرکت مرجانه ترسیدند و علی بابا فریاد زد خانه از خراب شود که خانه ام را خراب کردی و زندگی من و خانواده ام را با این عمل خود تباه ساختی. مرجانه پاسخ داد برعکس من زندگی شما و خانواده شما را از تباهی و نیستی رحویی دادم اگر من این نامرد بدنهان را که سرکردهای راهزنان است و خود را به شکل بازرگان در بود نکشته بودم او با خنجری که در زیر قبایی خود پنهان کرده بود شما را میکشت علی بابا خوشحال شد و مرجانه را در آغوش گرفت و گفت تو برگردن من حق حیات داری و این دومین بار است که جان مرا از مرگ نجات میدهی اینک به پاس خدمات تو تو را به عنوان عروس خود انتخاب می کنم تا با پسرم عروسی کنی آنگاه علی بابا پسر را مخاطب قرار و گفت تو باید با مرجانه که دختر دانا و زیباییست پیوند زناشویی ببندی پسر که فرمان پدر را محترم می شمورد و سوی دیگر مرجانه را هم دختر دانا و زیبایی می دانست فورا پیشنهاد پدر را پذیرفت و گفت با خوشنودی کامل می پذیرم. زیرا می با زیرا خیش من و شما و همه فامیل را از خطر مرگ دهایی ده بخشیده. در این هنگام علی بابا گفت: "باید پیکر بیجان سرکردهی راهسران را به خاک بسپاریم که هیچ متوجه نگردد و جنازه را با احتیاط در گوشه ای از باغ به خاک سپردند چند روز بعد هم جشن زناشویی مرجانه و پسر علی بابا برگزار شد و تمام همسایهها و آشنایان در آن جشن شرکت جستند. علایدین متوجه شد که میهمانان از حقیقت امر آگاهی ندارند و انتخاب مجانه را به عنوان خمسر برای پسر علایدین نشانی سخافتمندی و مهربانی علایدین دانسته و به آن حساب محسوب داشتند علی بابا از آخرین باری که برای آوردن جنازه برادرش کازن بقا رفته بود دیگر به آنجا نرفته بود بعد از گذشتن چند هفته از تاریخ عروسی و آرامش اوضاع علی بابا او جرأتی یافت و یقین حاصل کرد دیگر از ناحیه هیچکس خطری متوجه او نیست. روزی سوار بر اسب خود شد و با خیال راحت به سوی قار رفت و مطمئن بود سرکدی راهزنان به دست مرجانه کشته شده و سی و تن از چهل تن راهزن هم باز به دست مرجانه به حلوکت رسیدند. وقتی او به درون قار قدم گذاشت همه چیز را در جای خود منعزم دید و از کاملا عادی بود. و نشانی از دفت کسی دیده نمیشد شد علی بابا جامدان بزرگی را که با خود آورده بود از اشیاء قیمتی و لوازم کمیاب انباشت و در خرجین دیگر هم تا آنجا که اسب به او خوجت تحمل سنگینی بار را داشت سکه های طلای ناب را جا داد و با این درخوشی که او مالک انحصاری این است از آنجا بیرون آمد و به سوی شهر بازگشت از آن روز به بعد او هر وقت که لازم میدانست به اتفاق به سر خود به غار میرفت و هرقدر که دلش میخواست از جواهرات و سکه های و نقره باری چهار پایان خود میکرد و به شهر برمیگشت. زمین عبارت لازم را برای گشوده شدن قار به پسرش هم یاد داده بود که او هم به درون قار میرفت و سالیان دراز از این ثروت پایان به من و ثروت خدا داده را در راه خدمت به مردم و ایجاد آسایش برای توحیدستان استفاده می کردند و از بازرگانان پراوازه شهر بغداد هم بودند که بزرگترین تجارتخانه ها را در اختیار داشتند سرگذشت علی کوجیا تاجر بغدادی در روزگاران گذشته بازرگانی در شهر بغداد زندگی می کرد که از وضع مالی خود کمال خوشنودی را داشت. نام این بازرگان کوجیا بود که ثروت متوسطی داشت و هنوز هم همسر اختیار نکنده بود. و از خود خود یک کافی می و در خانه بزرگ با شکوهی که از پدر به او رسیده بود روزگار خوشی را می در همین خانه سه شب پیاپی خواب دید پیرمردی با سیمای باوقار به او سفارش می‌کنند که تو باید به زیارت خانه خدا بروی. علی کوچیا که مسلمان با ایمانی بود، به خاطر اموال و تجارتخانه و کالاهایی که در انبارهای دیگران داشت، سفر به مکه و انجام مراسم حج برایش کار آسانی نبود و به جبران این نفلت و همچنین به عنوان کفاره عمل خود به نیازمندان و توحیدستان کمکهای بسیار می‌کرد و از این طریق به جان خود را تسکین می‌بخشید. اما با وجودی که همواره به انجام کارهای نیک می بعد از این خواب که سه بار تکرار شد، ناچار نا شد بیش از این در این راه قفلت نوردد. علی کودیا تمام لوازم زندگی را به فروش هستند و کالاهای موجود را هم به دیگران واگذار کرد و فقط مقداری را که مفید می دانست باقی گذاشت تا با خود به مکمه برد، و خانه پدری را هم به بازرگانی اجاره داد. علی کوچیا یک هزار سکه طلا با فروش‌هایی که کرد به دست آورد و چون همراه داشتن آن همه پول طلا در طول سفر مکه صلاح نبود خمره خرید و ها را در آن جای داد برای ها هم مقداری زیتون ریخت و دهانه اش را هم با پارچه و گل محکم بست آنگاه خمره را به خانه دوست قدیمی و نزدیکی خود برد و به او گفت من عازم زیارت خانه خدا هستم و این خمره زیتون را به تو می سپارم تا از سفر برگردم تاجه کلید زیر زمین خود را به علی کجیا داد و گفت خودت آن را در زیر زمین بگذار و مطمئن باش تا وقتی که از سفر مکه بازگردی این خمره همچنان دست نخورده بر جای خود باقی خواهد بود روزی که کاروان مکه حرکت میکرد علی کاله هایی را که فکر میکرد در مکه با قیمت خوب به فروش خواهد رفت باره شطوری کرد و خودش هم شطوری سوار شد و همراه کاروان به راه افتاد و بعد از ماه‌ها سرانجام مکه رسیدند و با همه مسافرین دیگر که از کشورهای گوناگون جهان به کعبه آمده بودند مراسم حج و زیارت خانه خدا را در چندین روز انجام داد و بعد از فراغت از تشریفات مذهبی بساط خود را در روی زمین پهن کرد و کالاهایی را که آورده بود مورد نمایش آن همه مسافر قرار داد دو بازرگان که از آنجا می‌گذشتند، های علی کوچیا را دیدند و بسیار پسندیدند. جت خودشان قصد خرید نداشتند، ولی یکی از آن دو به دیگری گفت: مکه بازار خوبی است، ولی قاهره برای این کالاها بهترین نقطه جهان است. در آنجاست که بالاترین سودها به صاحب کالا خواهد رسید. علی کوچیا این جمله را شنید و تصمیم گرفت به سفر قاهره برود. و این کالاها را برای فروش در آنجا ارائه کند. علی کوجیا بساط خود را جمع کرد و با توجه به اینکه درباره زیبایی و دیدنی‌های قاهره بسیار شنیده بود، با کاروان قاهره همراه شد و بعد از مدتی به قاهره وارد شد و در ظرف چند روز توانست کلیه کالاهای خود را بیش از آنچه که انتظارش را داشت، با سود قابل ملاحظه‌ای به فروش برساند. با بوقر فراوانی که از این فروش به دست آورد، اشیاء زیبا و کمیابی از قاهره خریداری کرد و با کاروانی که تا شش هفته دیگر عازم دمشق میشد، قرار گذاشت و در این شش هفته دیدنی‌های قاهره، مانند اهرام و بناهای تاریخی و بسیاری آثار بیمانند دیگر مصر را بازدید کرد و بر روی رود نیل به کشی سوار شد و قسمت‌های سفلا و اولیای نیل را گردش کرد. و راغبت بعد از دیدن شهرها و محله های زیبای قاهره که هر کنم تازگی و زیبایی برای او داشتند، با کاروان دمشق هم سفر کردید. در طول سفر به دمشق، به بیت المقدس که محل مقدسی برای یهودیان و مسیحیان به شمار میآید رفت و عبادتگاه و مسجد معروف آنها را بازدید کرد. علی کوچوی دمشق را بسیار پسندید. مدت درازی در آنجا اقامت کرد. ولی در عین حال زادگاه خود بغداد را از نظر دور نمی داشت. از دمشق به شهر حلب رفت، چندی در آنجا زیست و از حلب از راه فرات سفر خود را ادامه داد تا به شهر موسل رسید. از آنجا قصد داشت سفر خود را تا رودخانه دجل ادامه دهد. هنگامی که علی کوچیا به موسل رسید، بازرگانان ایرانی که از شهر حلب با او آشنا شده بودند، با او ملاقات و معاشرت کردند. و نزاکت و رفتار معدبانه آنها باعث علی را زیر تأثیر قرار داد که کاملا تابعه نظریه و افکار آنها گردید و علی مایل شد با آنها به ایران سفر کند و همراه آنها به شهر شیراز رفت تا از آنجا با سود سرشار به سهولت به بقداد برگردد بازرگانان ایرانی علی را به شهرهای سلطانیه، ری، قم، کاشان و اصفهان بردند، و از آنجا به شیراز بازگشتند از شیراز تجریجا به هندوستان رفتند و در هر کدام از شهرهایی که نام بردیم علی مدتی سکونت گزید و روی همرفته سفر او 7 سال طول کشید. در طول این مدت تاجری ای که علی خمره زیتون خود را به او سپرده بود درباره علی و خمره فکری نکرده بود تا اینکه در یکی از شبها تاجر میهمانی برای شام دعوت کرده بود و با خانواده خود بر سر سفره نشسته بودند. همسر تاجر حواس زیتون کرد و زیتون خانه نداشتند. تاجر نایهان به یاد خمره زیتون امانتی افتاد که هفت سال پیش علی کرجیا به او سپرده بود و فورا به همسرش گفت الان سر خمره زیتون علی میروم. همسر تاجر فریاد کشید به هیچ وجه این کار درست نیست زیرا مال امانتی است و حق نداری به آن دست بزنی و باید یک خمره با همان وضعی که به تو سپرده شده از باقی بماند. بمان بعد از گذشت هفت سال زیتون ها تغییر مذب و شکل رنگ داده اند و قابل خوردن نمی باشند. تاجر تاجر گوش به سخنان همسر خود نمیداد گفت هفت سال بی خبری نشان آن است که علی فوت کرده همسر تاجر پاسخ داد چون کسی خبر فوت علی را نیوبرده است حتما او زنده است و ممکن است همین فردان از ما بیاید و اگر بفهمد تو مقداری از زیتون او را برداشده ای به آبرو و شهرت ما لطمه خواهد خورد. و عقیده مردم درباره ما تغییر خواهد کرد تاجر توجهی به این سخنان نکرد و قاشق و بشقابی برداشت و به انبار رفت و سر خمره را باز کرد و مقداری از زیتون ها را بیرون آورد متوجه شد که آن زیتونها قابل خوردن نیستند فکر از زیتونهایی که در زیر قرار اند بهتر خواهند بود برای این منظور خمره را وارونه کرد در این موقع سکههای طلا همه بیرون ریخت و تاجر بسیار خوشحال شد روز من تاجر خمره مشابه همون خمره خریده به خانه آورد و آن را با تازه و قابل خوردن هم و سر خمره را مانند اول با پارچه و گل محکم بست و در انبار گذاشت. حدود یک ماه بعد از آنکه تاجر عمل زشت خود را انجام داد و تلاهای امانتی را تصرف کرد و خمره جدیدی به جای خمره اولی در انبار جای داد، علی قوجی از سفر بازگشت و به خانه تاجر آمد تا خمره زیتون خود را به خانه خود ببرد تاجر بعد از سلام و خوش آمد و تعارفات عادی به علی گفت دوست عزیز این کلید انبار خودت برو و خمره را بردار از همون وقتی که خمره را در انبار گذاشتی تا این لحظه کسی به آن دست نزده و در همان انبار بر سر جای خودش می باشد علی کلید را گرفت و به انبار رفت و خمره را برداشت و کلید را به تاجر پس داد و از امانتداری او سپاس گذاری کرد و به مسافر که تا تخلیه خانه خود توسط مستجر در آنجا مسکن گزیده بود رفت و در آنجا خمره را خالی کرد اما اثری از سکه های طلا در آن ندید و خمره پر از زیتون بود. علی بهقدری تعجب کرد که حد نداشت، دوباره خمره خالی را قانونه کرد و درون آن را دقیقا نگاه کرد و دست مالی تا اینکه مطمئن شد سکه ها از درون آن برداشته شده است. او از شگفتی و تعاسف فریادی کشید و خمره را برداشت منازد بازرگان آمد و سراغ سکه های طلا را گرفت. تاجه پاسخ داد من از سکه طلا خبر ندارم روزی هم که خمره را اینجا آوردی فقط گفتی یک خمره زیتون نزد تو میگذارم و اشاره به سکه طلا نکردی و اگر در این خمره سکه طلا گذاشته بودی چرا به من نگفتی؟ علی گفت هزار سکه طلا در این خمره گذاشته بودم؟ به هر حال بازرگون منکر بود و اظهار بیاطلاعی اطلاعی میکرد و گفت از آن روز تا کنون کسی به انبار نرفته است در برابر اصرار علی تاجر سوگند یاد کرد علی گفت حال که دوستانه حاضر نیستی سکه های پس بدهی ناچار به قاضی شخواییت خواهم کرد مردم رفته رفته مقابل دکان تاجر جمع شدند و او هم فریاد میکرد تو به من خمره زیتون داده ای. و حالا می گویی هزار سکه طلا هم در آن بوده است در حالی که فقط زیتون در آن بوده هیچ معلوم نیست که فردا بیایی و ادعا کنی الماس و مرواریت هم در آن خمره بوده است ماجوران همسایه از دکان‌های خود بیرون آمده بودند و از علی کجا میپرسیدند چه اتفاقی رخ داده است علی هم ماجرای خمره زیتون و های طلا را تعریف می‌کرد و تاجر هم ادعای او را انکار می‌کرد علی گفت خدایی هم وجود دارد که ناظر بر احوال و روابط بین بندگانش رو است عاقبت حقیقت امر روشن خواهد شد مداخلهٔ بازرگانان هم به جایی نرسید و علی شكایتش را نزد قاضی برد هر دو در برابر قاضی حاضر شدند علی ادعای خود را مطرح کرد و تاجر هم قبول کرد فقط زیتون نزد او امانت گذاشته و سکههای طلا را منکر شد آنگاه قاضی پرسید شاهدی هم داری علی پاسختر را شاهد ندارم ولی سوگند یاد میکنم که آنچه میگویم عین حقیقت است سرانجام قاضی به بیگناهی تاجر رعی داد علی با ناراحتی بسیار از رأی قاضی درخواستی کتفی تهیه کرد و از خلیفه هارون و رشید تقاضای رسیدگی و دادخواهی نمود علی میدانست که خلیفه بعد از نماز به سوی قصر می کند و فوراً خود را به خیابانی که در مسیر عبور خلیفه بود رساند و نامی دادخواهی خود را به افسر مربوط به این کار تسلیم کرد افسر هم فورا نامه را تقدیم خلیفه کرد و در طول راه خلیفه از موضوع دادخواهی آگاه شد و برای فردا بعد از ظهر ساعتی را معین کرد و افسر هم وقت به حضور رسیدن را به علی گفت اتفاقا شب همان روز خلیفه همراه جعفر نخست وزیر و رئیس نگهبانان خانان قش برای گردش شبانه در اطراف شهر با لباس مبدل در حرکت بود به خانه ای که صدا از آنجا میامد رفت و از روزن در به داخل خانه نگاه کرد در آنجا ده دوازده بچه مشغول بازی با یکدیگر بودند یکی از بچه ها پیش کرد امشب نقش قاضی را ایفا کنیم یعنی غازی بازی کنیم من غازی می شوم. آنگاه بادی در گلوی خود انداخته گفت علی کردیا و تاجری که هزار سکه طلای او را بالا کشیده است. نزد من بیاورید سخنان این پسر بچه خلیفه را به یاد دادخواهی علی کوجیا انداخت که همان روز درخواست دادخواهی خدا به خلیفه تصمیم کرده بود با این صحنه توجهی خلیفه کاملا متوجه علی کوجیا شده بود از سوی دیگر داستان شکایت علی کوجیا از تاجر و رسیدگی قاضی و حکم قاضی بر بیحقی علی کوجیا و اعتقاد عمومی بر اینکه قاضی خلاف واقع نظر داده است در سراسر شهر بغداد منتشر شده بود. ها هم از آن آگاه شده بودند و این دعوا را موضوع بازی خود قرار داده و صحنه محاکمه را به صورت سرگرمی و تفریح درآورده بودند و با خوشحالی آن را اجرا می کردند. قاضی با وقار تمام بر صندلی قضاوت نشست و پسر بچه دیگر دو پسر بچه دیگر را به عنوان علی کوجیا و تاجر به حضور قاضی آورد. آنگاه قاضی رو به علی کوچیا کرده پرسید شکایت شما چیست علی شکایت خود را از تاجر توضیح داد و گفت در ته خمره که به او سپرده بودم هزار سکه یه زر نهفته و روی آن را رو با زیتون پوشانده و اینک درخواست دارم دستور دهید سکه‌های طلای مرا پس دهد